تفاسیر و ترجمه های قرآن خب تو این تیتر من چی باید بگم شما واجهی خودتون رو واجهی که انتخاب کردید باید تو برنامه جامعه و سرچ بکنید ببینید واجهی شما چند بار در قرآن به کار رفته اگر این, اگر این برنامه رو دیده باشید برنامه جامعه و تفاصیل رو دیده باشید اونجا هم بر اساس ریشه هم بر اساس واجه به شما میگه مثلا اگر واژه شما جهاد هست شما اگر واژه رو بزنید بنویسید جهاد فقط واژه جهاد رو به شما نشون میده اما اگر ریشه رو بزنید بنویسید جیم هادال اون وقت هرچی مشتقات از این ریشه هست در کل قرآن رو به شما نشون میده که این مطمئن تره این روش مطمئن تره اون وقت میتونید نگاه کنید توی ریشه ها هم ببینید اون ریشه شما چند بار در قرآن اومده. هم واژه شما مثلا من بور رو وقتی که میخوام سرچ بکنم میرم تو بخش ریشه با واف را رو میزنم فرض کنید به من میگه این ریشه پنج بار در قرآن به کار رفته من میخوام در مورد واژه بور کار بکنم میبینم از این پنج بار دو بارش بور هستش اینجوری یه آمار دقیق از توی قرآن بیرون میکشم که واژه من چند بار در قرآن به کار رفته خب حالا رفتم واژه رو سرچ کردم دیدم مثلا فرض کنید دو بار به کار رفته مثل واژه بور این دو بار چون تعدادش کم هست مشکلی نداره من میتونم هر دو آیه رو اینجا معرفی کنم در موردش مقدار کمی صحبت کنم اما اگر واژه شما مثلا فرض کنید 20 بار در قرآن به کار رفته ده بار به کار رفته پنجاه بار به کار رفته تعداد زیاده یعنی تعداد میره در حدی که شما نمیتونید مثلا ده تا آیه رو بیارید من اگر بخوام یه عدد به شما بگم مثلا شما حدود تو این تیتر حدود سه آیه حداکثر اکثر یا 4 آیه رو بذارید کفایت میکنه نباید اینجا پر بشه از آیه حداکثر اکثر 4 آیه رو در نظر بگیرید حالا این 4 تا چه اساسی باشه ببینید مثلا مقا... اگر میخواید دقیقتر آشنا بشید مقاله سلات منو ببینید توی مقاله سلات چون سلات سالات و ریشه سادلام واف تو قرآن خیلی زیاد به کار رفته یسلون سلات، مصلا خیلی زیاد من بنابراین ناچارم که این آیات رو اولا دشمارم ببینم چند بار در قرآن ریشه به کار رفته ریشه سادلام واف بعد حالا نگاه کنم ببینم مثلا اگر هفتاد بار به کار رفته یا صد بار به کار رفته معانی این ریشه رو به چند دسته میشه تقسیم کرد مثلا میشه به سه دسته تقسیم کرد یا به چهار دسته تقسیم کرد اون وقت برای هر دسته یک آیه رو مثال میارم اینطوری در واقع از ذکر مثلا فکر کنید هفتاتا آیه رو که نمیشه دیگه ذکر بنابراین من اینا رو چهار دسته کردم برای هر دسته یک آیه رو به عنوان نمونه همینجا اول بحث میارم شما ممکنه بگید هنوز ما شروع نکردیم به کار از کجا بدونیم این معانی چیه که حالا چهار دستش کنیم به سه دسته خب این راحلش اینه شما بذارید مقالتون که تموم شد متوجه شدید واژه شما در قرآن مثلا سه معنا داره و وقت میتونید طبیعتا برای هر کدام از این معانی هم یا آیه پیدا کنید یا آیه که به, به نظر خودتون بهترین معرف برای اون معنا هست اون وقتون آیه رو اینجا بذارید ابتدای بحث در واقع هیچ لزوم نداره از الان درگیر بشید ست آیه رو الان پیدا کنید من اینجا توی مقاله بور چون دو بار در قرآن به کار رفته خب اصلا این گرفتاری رو ندارم دوتام تعدادش خیلی کمه هر دو رو اوردم گذاشتم اینجا خب. بعد از این آیاتی که که میبینید هر دو آیه رو یه بار میخونم آیات رو عوض بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال و سبحانه ما کان یم لنا ان نتخذ من دونه من اولیاء ولیکن متعتهم و حتى حتی نسو از ذکر و کانو قومن بورد سوره فرغان آیه هیشته آیه دوم دو بل زننتم ان لین غلی بر رسول و المؤمنون الى احلیهم ابدا و زوی فی قلوب و زن سوئی و کنتم قومن بوره. اینجا هم سوره فتح آیه دوازده. خب من دو تا آیه رو وردم. حالا دنبودی این آیات حتما بحث قائم کرد بعد از این آیاتی که من انتخاب میکنم، حالا سه دسته معنا، سه تا آیه چهار دسته معنا، چهار آیه یا مثل من دو تا آیه فقط. اینجا باید این نگاهی بکنم به تفسیر. برم تفسیر قرآنی رو نگاه کنم. ببینم دنبودی آیه مورد بحث من چی گفتن واژه بور رو اینا چی فهمیدن مفسرای ما؟ به کدوم تفاثیر برم آیا کار من یک کار تفسیریه که من بخوام همه مطالب ما از تفاثیر بگیرم؟ نه کار شما ماهیت اصلیش تفسیری نیست یعنی شما در واقع که کار واژگانی داری میکنید مفرداته یعنی اگر حوزه پشوهشتون رو بخواید دقیق بدونید چیه مفرداته درست مفردات هم بیس و زیربنای بحث تفسیره ولی دقیقا تفسیر نیست بنابراین اینجا لازم نیست شما ما چند صفحه و تعدد رو اختصاص بدید به بحث تفسیری. چند تا تفسیری رو ببینم. این چند تا تفسیری که خدمتون میگم الان این تفسیری رو ببینید حتما. اگر بیشتر از اینا دیدید که تقریبا 5-6 تا تفسیر هست مخلوطی از تفسیر قدیم و تفسیر جدید. و شیعی و سنی که اینا رو اگر ببینید تقریبا میتونید یه اطمینان نسبی برسید که نظرات مفسرین رو تا حدود زیادی به دست آوردید یکی تفسیر تبیان شیخ توسی تفسیر دوم تفسیر کشاف زمخشری تفسیر سوم تفسیر مجموع بیان تبرسی تفسیر چهارم، تفسیر مفاتیح به فخر رازی، تفسیر پنجم، ال میزان علامه تواهی، طب تفسیر ششم، تحریر و تنویر ابن آشور. این تفسیر اگر شما تو فهرست منابع همین مقاله بور هم مراجعه کنید به ترتیب علفا مرتب شدن همونجا میتونید پیداشون کنید. این شیشتا تفسیر رو برای واژه خودتون دستکم ببینید و یک گزارش چند سطری الان اگر مقاله منو نگاه کنید چند سطر بیشتر نیست. به ما بگید که اینا چی فهمیدند. چرا ما این کار رو داریم میکنیم؟ به خاطر که ما میخوایم بگیم که قبل از ما هم محققانی بودند که در مورد این واژه قرآنی کار کردند و به این نظر رسیدند حالا من به عنوان یک محقق مستقل نه مقلد من مقلد نیستم اینجا من محققم من میخوام ببینم از توی نظرات تفسیری کدام نظر درستتره، کدام نظر دقیقتره. و شاید اساسا بتونم بگم که هیچ کدام از این نظرات تفسیری درست نیست من عنوان محقق الان میخوام یک نظری بدم که تا الان کسی نگفته و این دقیق ترین و درست است. در واقع کاری که شما میکنید اینه که یه سابقه ذکر میکنید و خودتون هم اضافه میکنید به اون لیست شما هم زیل این مفسران قرار میگیرید و حالا یک نظری هم شما ارائه میکنید این برای تفاسیر حالا من بور رو رفتم تو این تفاسیر دیدم چی گفتن؟ اغلب این تفاسیر رو اگر شما با تفاسیر اسلامی کار کرده باشید دیدید که تفاسیر انگاه کپی پیس همن خیلی وقتا نظرات نظرات هموهی تکرار میکنن یعنی مثلا فرض کنید اگر مثال میگم تبری در جامل بیان یه چیزی رو گفته بعد از اون مثلا فخر رازی هم همون گفته تبرسی هم همون گفته امیجور تکرار شدن تکرار مکررات برای شما وقتی دارید گزارشی از آرای تفسیری ارائه می‌کنید اون تکرارها رو حذف بکنید به مطلب رو بگید مثلا اگر فرض کنید الان برای واژه بور من گفته شده هلاک شده این هلاک شده رو صد تا مفسر گفتن من یه بار میارم دیگه نمیگم یه بار مثلا فرض کنید فخر رازی گفته است بور به معنای هلاک شده است تبرسی گفته است بور به معنای هلاک شده است شیخ توسی گفته است بور به معنای حلاق شده است. این غلط این رویش. شما یه بار شما با نظرات کار دارید. نه با, اف... نه با مفسرین. شما با آرا و اقوال کار دارید. نه با کسی که صاحب رعید. بنابراین یک بار فقط بگید کفایت میکنه. بور رو چی گفتن مفسرهای ما؟ که مردمان فاسد و مردمان خرابی هستند مردمانی که هیچ خیری در آنها نیست بعد من نگاه کنید پرانتز رو باز میکنم میگم که تبرسی رو نگاه کنید زبخشری رو نگاه کنید تباتبایی رو نگاه کنید حالا جلوتر بقیه مفسرا رو هم استفاده کردم. شما به همین صورت پرانتز باز میکنید ارجایتون رو میدید همینجا یه نکته خیلی مهم و در نظر داشته باشید وقتی که مثلا شما دارید از یک سری تفاصيل استفاده میکنید یا از یک سری فرهنگ های لغت استفاده میکنید فکر نکنید ارجاع به این تفاسیر و فرهنگ نامه ها کار مهم نیست مهم فقط حرفی س... که من میزنم صورت کار مهمه چرا صورت کار گفتم برای پایان خیلی مهمه مثلا فرض کنید من نوشتم تبایی جلد 15 ویرگول صفحه 191 رو تحقیق مینویسه وقتی تحویل میده اینا اینجوری مینویسه مینویسه المیزان جلد 15 صحفه 192 بعد مثلا برای تبرسی رو مینویسه تبرسی جلد صفحه صحفه 250 بعد من ازش سوال میکنم که شما چرا تبرسی رو به اسم نویسنده ارجاع دادی المیزان رو به اسم کتاب ارجاع دادی میگوستان خب چه اشکال داره که اصل حرف گفته شد فکر میکنه اینا مهم نیست اینا هر جور من دلم خواست دقت کنید. اینا دل بخواهی نیست یعنی انشالله وقتی بخواید مقاله چاپ بکنید وقتی پایان نامتون رو می‌نویسید دانشگاه به شما یه آینامه داده تو سایت که میگه بر اساس این رعایت کنید مجله‌ای که میخواید مقاله تون رو چاپ کنید به شما آینامه میده و اگر اینا رو رعایت نکنید اون داور مقاله شما یا داور پایان نامه شما میفهمه که شما دارید ناشیانه رفتار میکنید. بنابراین به این مباحث سوری هم دقت کنید خب حالا این مفسرا بودن بعد از مفسرا من میام میگم مترجمان قرآن شما اگر با من همراه باشید ما میرسیم به بحث مترجمان قرآن مترجمان قرآن اگر نگاه کنید من یک جدولی برای مترجمه مت... های قرآنی گذاشتم این ترجمه این جدول رو من همیشه توی مقالاتی که در حوزه مفردات دارم همیشه از این جدول استفاده میکنم خیلی عقیده من کار رو نظام میده نظم میده شما هم استفاده کنید بچه‌هایی هم که با من مفردات داشتن همه استفاده کردن مترجمان قرآن اینجا شما باید بپرسید که کدوم مترجمان ببینید تو این جدولی که هست مثلا برای آیه 15 سوره فرقان یه ستون های عمودی داره ستون افقی داریم توی ستون عمودی اول در واقع بالا معادل فارسی زیرش نام اثر کوهن، بعد از اون هم نام اثر معاصر یعنی ما مترجمای ما هم توشون مترجمای های داریم هم توشون مترجمای معاصر داریم خب این ستون عمودی وقتی میرسیم به ستون عمودی دوم بالا من نوشتم تبا و حلاک شده یا سزاوار حلاکت بعد سومی رو نوشتم شقی و تبه روزگار چهارمی رو نوشتم نابود و نیست شده اینا چیه؟ من رفتم تمام این ترجمه های قرآنی قدیمی و جدید اون قدیش که میتونستم در دسترسم بود نگاه کردم نگاه کردم ببینم چه معادلهایی گذاشتن این معادلها روی کاغذ نوشتم دونه دونه بعد دیدم شد و مستن. خب من فقط اونو میذارم بالا زیرش مترجمی که این رو گفته اسمشو میذارم حالا اگر مترجم کهان باشه مثل آقای تبری یا سورابادی اسمشو میذارم روبروی ستون روبروی ردیف نام اثر کوهن. اما اگر معاصر باشه مثل آیت الله مکارم یا آقای فولادوند خب طبیعتاً اسمش رو بذارن اثر معاصم. پس این هم برای جدول مربوط به ترجمه ها. خب. بذاری این تموم کنم بعد من فکر می کنم اگه سوالی داشته باشید. در خدمتون هستم. پس معادل های مترجم های قرآن رو هم باید دستبندی کنید و بعد اینا رو بر اساس نام مترجم و اون ترجمهی که انتخاب کردند مرتب کنید و بچینید بعد از این میریم سراغ نمیدونم شما این در واقع مقاله رو که من تکون میدم شما تو صفحه اینو میبینید یا نه یا فقط برای خودم دیده میشه یعنی من مقاله بالا پایی میکنم شما هم خوب دست شما در نکنید خب ببینید اینجا می‌رسیم به بحث زیر, زیر اون جدول من نوشتم بررسی ترجمه های قرآن به زبان های اروپایی این بحث ترجمه های قرآن به زبان های اروپایی علل من از شما توقع ندارم که سراغ این زبان ها برید اگر انگلیسیتون خوب هست فقط ترجمه های انگلیسی رو میتونید ببینید اضافه کنید توی همین جام التفاسیر هم ترجمه های فارسی قرآن هست هم ترجمه های انگلیسی قرآن هست یکی دوتا ترجمه انگلیسی هم ببینید که کارتون وزین‌تر بشه ضرر نداره ببینیم بالاخره یک نفر که مخصوصا مثلا طرح کنید بعضی از این مترجمایی که قرآن پجو هم هستن به کارهای قرآنی خوبی دارن حالا دو سه تا نمونه مثلا از مترجمای های انگلیسی هم اگر بیارید خب کارتون وزین میشه اگر هم نیبردید مشکل نیست تمرکزتون رو همون ترجمه های فارسی باشه تا اینجا رو من متوقف میکنم اگر سؤال دارید ببینید ساید یه نکته بگم باید من بتونی مقاله بورم به یه جای خوبی برسونم اگر سؤال جدی دارید من در با کمال مید از سوال استقبال میکنم اگر هم که نیست که میتونم ادامه بدم من یه چند ثانیه سکوت میکنم شما اگه سوال دارید بپرسید که سوالی ندارید خب آقای امیر محمد شجایی پور برای ترجمه های قرآن چه ترجمه باید باشه ببینید همون جدولایی که توی مقاله بور هست رو اگر نگاه کنید اسم یه سری از این ترجمه اومده همون ترجمه‌ها ها رو استفاده کنید یعنی اگر مثلا الان همون سوره فرقان آیه هیچ در رو نگاه کنید روبروی دوتا ردیف نام اثر کوه نام اثر معاصر اسمیه سری ترجمه اومده ترجمه تبری ترجمه سورابادی نسفی ابوالفتوح رازی میبودی آیتی مکارم فولادوند الهی قمشه ای انصاری اینا همهشون تو جامع تفاسیر هستن اگر شما با برنامه جامع تفاسیر کار کرده باشید که حتی اگرم کار نکردید دیگه بعد یاد بگیرید چون میخواید پایان بنویسید به این برنامه خیلی نیاز دارید بنابراین میتونید از همون دی جامعه تفاصیل این همین جدول ها برید همین مترجمها ها را ببینید کفایت میکنید. خب اگه اجازه بدید من برم جلو. بحث رو ببرم جلو. خب میگه که بعد از این جدول ها های اروپایی رم هم عبور میکنیم ببینید اونجایی که شروع میشه میگه افزون بر این لازم است اه... یه نکته ای رو من گفتم ابتدای صفحه افسون برای لازم است اشاره شود که دو آیه یاد شده به اینجا رو اگر نگاه کنید یه نکته ای رو من گفتم ببینید گاهی واجی شما یه سری اشکالات یه سری مسائل ایجاد میکنید یعنی یه سری مسائل ایجاد میکنه این مسائل میتونه از مختلف باشه مثلا واجی بور همونطور که دیدیم الان اغلب مفسران و مترجمان قرآن گفتن بور به معنای حلاق شده، تباه شده، فاسد، خراب و امثالهم هم هستش. آقای فخر رازی زیل همین آیه هجده فرقان یک عبارتی آورده که من به عربیش رو آوردم فارسیش هم هم آوردم. فارسیش هم منتها منتهى نمیخوام وقت کلاس رو بگیرم فقط چند چند کلمه بگم در مورد اشکال آقای فخر رازی فخر رازی میگه کان و قومم بورا یعنی اینها مردمانی فاسد و خراب بودن یعنی چی یعنی میخواد بگه اینا خداوند وقتی اینا رو داشت میآفرید توی لوح محفوظ نوشت که این آقای الف آدم فاسدی است خانم الف آدم فاسدی است این دیگه به پیشونیش خورده فساد و نابودی، این حلاکت به پیشونیش خورده و آقای فخر چون واژه رو به معنای حلاکت و به معنای فساد و خرابی گرفته میگه که در واقع از این آیه یه نوع جبر میفهمه حالا شما خودتون بعد از کلاس هم متن عربی هم ترجمه فارسیش شو که من انجام دادم توی مقاله هست برید ببینید با دقت بیشتر بخونید دقیقا مضمون حرف آقای فخر رازی اینه که واژه بور به معنای هلاک شده و فاسد و خراب است و میگه خدا اینو تو لوح محفوظ ثبت کرده و از تو این مفهوم جبر بیرون کشیده خب این یه مسئله است یعنی برای ما این سؤاله که آیا واقعا این واژه به این معناست و بعدم میشه از توش مفهوم جبر بیرون کشید این یه مسئله است اگر شما به عنوان محقق بتونید ثابت کنید که مفهوم واژه بور به درستی فهمیده نشده آقای فخردازی و خیلی از مفسران و مترجمان قرآن این واژه رو به درستی نفهمیدند. خب این مشکل رو میتونید حل بکنید میتونید حل بکنید این مشکل رو که در قرآن جبر وجود نداره اینکه خدا بخواد بگه مثلا فرض بکنید ما به پیشونی یه نفر زدیم که این هلاک شده است. این که شما اگر آیات قرآن را ببینید سایر آیات قرآن مثلا این آیه میگه ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون خدا به کسی ستم نمیکنه این مردمن که خودشون به خودشون ستم میکنند خود خب که جبر نیست خدا داره میگه خودتون دارید به خودتون ستم میکنید یا آیه ای ان هدینا سبیل اما شاکرن و اما کافورا میگه ما راه رو نشون میدیم خود آدم یکی از این دو راه رو به اختیار خودش انتخاب میکنه یا میره به گذاری یا میره به کفران یا آیه فترتا الله اللاتی ناس الناس علیها یعنی هرکی آفریده میشه آدم پاک آفریده میشه خدای آفریده میشه بنابراین این حرف آقای فخر رازی که میگه موقع تولد در واقع انگار وقتی خدا داره میآفرینه به پیشونی این آدم میزنه که این آدم فاسده هلاک شده است به پیشونی اون یکی آدم هم میزنه که این آدم اهل سعادته نه این خود آیات قرآنم جور در نمیاد اگر ما بتونیم معنای از بور ارائه کنیم که این مشکل رو حل بکنه هم این معنا با سایر آیات قرآن که خدمتون قرارت کردم چف میشه هم معنای درست واژه رو به جامعه قرآن ارائه کردیم و حرف امثال آقای فخر هم زیر سآل میره بنابراین خیلی مهم واژه ها فکر نکنید بحث چون واژه هست بحث جزیست نه میتونه تحصیلات کلامی و تفسیری هم داشته باشه خب حالا این در واقع اگر واژه شما مسئله ای داره میتونید اینجا مسئله واژه‌تون رو در چند سطر بگید من مسئله که با بور داشتم همین مسئله کلامی بود که آقای فخر رازی مطرح کرد و توی مقاله جواب اون رو دادم یه وقت هم از مسئله شما با واژه‌ای که کار می‌کنید اصلا معنایی نیست به لحاظ و به لحاظ ریشی شناسی است مثالش رو شاید برای شما زدم واژه مسجد طبق قواعد زبان عربی باید بر, بر اساس وزن مفعل ساخته بشه. باید درست بشه مسجد نه مسجد. چرا؟ چون سجده مزارش میشه یسجدو جدو توی زبان عربی میگن هر فعلی که مزارش بر وزن یفعلو باشه مثل یسجدو جدو اسم مکانش بر وزن مفعل ساخته میشه مثل مسجد. اما چرا شده مسجد؟ در واقع دانشمندان علم صرف در زبان عربی این براشون شده یه مسئله این گره براشون ایجاد کرده شما اگر بتونید جواب اینو پیدا کنید خب این در واقع میشه مسئله پژوهش شما این واژه قرآنی رو دارید جوابش رو هم در مقالتون میدید مسئله ای که با واجهتون دارید میتونه به لحاظ صورت و شکل واژه باشه مثل مسجد میتونه به لحاظ معنای واژه باشه مثل واژه بور خب، حالا این تیتر تمام میشه و ما وارد تیتر بعدی میشیم. تیتر بعدی چیه؟ تیتر بعدی بور در فرهنگ نامه های عربی. یعنی شما هم تیتری که برای مقالتون میزارید برای واجعتون تیتر را به همین ترتیب باشه. هر جا گفتم لازم نیست، این میتونه شما تو مقالتون استفاده نکنید، خب استفاده نکنید، ولی هر جا رو که در واقع کاملا مشابه مقاله من میشه شما با همین شکل با همین صورت پیش به. تیتر دو ما شده بور در فرهنگنامه های عربی. خب من اینجا یه چند ثانیه سبت میکنم اگه سؤالی دارید بپرسید خب بریم ادامه بحث مثل اینکه سوالی نداریم اصلا هستید اونجا؟ آره فقط من مطمئن بشم هستید خب خیلی خب بریم ادامه بحث بور در فرهنگنامه های عربی ببینیم اینجا توی این تیتر باید چی بگیم و چطور مباحث خودمون رو پیش ببریم. من خب فرنگنامه ها رو به شما دیگه کاملا معرفی کردم بنابراین اینجا ما مشکلی نداریم با همون سبک و سیاقی که کار با فرنگنامه ها رو یاد گرفتید باید برید واجعتون رو اونجا پیدا کنید اما حالا رفتید فرض کنید کتاب علیه خلیل رو دیدید جمهرت و لغه ابن درهید رو دیدید تحصیب و لغه حری رو دیدید و به همین ترتیب منابعی که معرفی شد همه رو دیدید چیکار باید بکنید؟ باید یه کاغذ و قلم جلو دستتون باشه حالا کاغذ و قلم که میگم این لزومن کاغذ و قلم نیست یعنی من خودم الان دیگه مقالاتم رو با ورد می نویسم یعنی از اول پیشه رو با ورد بر می دارم که وقتی میخوام مقاله رو جمعش بکنم دیگه زحمت تایپ کردن دوباره به خودم ندم. اینشالا شما وقتی میخواد بنویسید چه تحقیقاتتون رو، چه پایاننامه خودتون رو سعی کنید که از همون اول از ورد استفاده کنید. این زحمت شما رو نصف میکنه. انتهای کار نمیخواد دوباره بشینید همه مطالب رو تایپ کنید. خب شما میرید ترنگنامه ها رو میبینید شروع میکنید به فیش برداری کردن این فیش ها رو تو کامپیوترتون یا روی کاغذ هر طور راحتی برمیدارید میبینید خلیل برای بور معنای علف و ب رو گفته نمیدونم تحصیب و لغه همون معانی رو گفته یه معنای سوم هم اضافه کرده همه این فیشاتونو هاتون رو برمیدارید همه این که برداشتید بعد نگاه میکنید میبینید که فرنگنامه ها مجموعا ده معنا یا مثلا پنج معنا برای واژه شما گفتن این معانی رو باید بندی کنید یعنی اینجا هم دوباره باید از تکرار و دوباره گویی خودتون رو نجات بدید لازمش اینه که فیشاتون رو شروع کنید بندی کردن یعنی بگید خب این فیش میگه که بور به معنای حلاق شده است اینو میذارم کنار این آقای خلیل گفته رفتم ابن منظورم لسان العرب ابن منظورم دیدم اونم گفته معنای حلاک شده خب پس این این فیشه آقای ابن منظور که میگه حلاک شده است میشینه کنار اون فیشه آقای خلیل که گفته بور به معنای حلاک شده بعد فرض بکنید مثلا ازهری رو نگاه میکنم میگه که بور به معنای گمراه هستش میرم فرض کنید فرهنگنامه ابن منظورم نگاه میکنم میگه بور به معنای گمبراست پس این دوتا فیشم کنار هم قرار میگیره فیشها رو کنار هم میگذارید فیشهایی که معنای یکسان داره این فیشها رو که کنار هم میگذارید در واقع دارید کارتون رو دستبندی میکنید دارید از تکرار و دوباره گویی فرار میکنید خب حالا بیاید بریم سراغ همین مقاله بور ابتدا میگه که شما با بعد از اون تیتر خودتون که مثلا فرض کنید واجتون منافق در فرهنگ های عربی ببینید میدونید دیگه فرهنگنامه همه بر اساس ریشه مرتب شدن هیچ گریزی از این ندارید که شما برید سراغ ریشه واجتون بور از ریشه با واب را ساخته شده بنابراین من اینجا یه اشاره می می‌کنم توی خط اول سطر اول و بعد میگم معانی مختلفی هم براش سگ شده که به ترتیب زیل ارائه میشوند. شروع میکنم اینا رو ارائه کردن منتها چون فیشهامو کنارم چیدن دیگه اینا رو با دست بندی ارائه میکنم. نگاه کنید الان وقتی بریم جلو تکرار هست توی کار من ولی زیاد نیست یک خریل میگه بور جمع است به معنای گمراهان حلاق شده ابن دورید میگه که ها، یه نکته ای را من یادم رف شما بگم همینجا اضافه بر اینکه شما باید فیشهاتون را دستبندی کنید یک نکته ای هم وقتی میخواید شروع کنید ارائه کردن یعنی میخواید دیگه معانی رو حالا بیاید بگید ترتیب تاریخی رو حفظ کنید یعنی <تصح> <تصح> چی؟ یعنی وقتی میخواید معانی رو بگید القاده آقای خلیل به لحاظ زمانی جلوتر از ابن دورید هست. آقای ابن درهید جلوتر از از هست. به همین ترتیب، این ترتیب تاریخی رو حس کنید. یعنی شما تا میتونید این فیشهاتون رو به شکل منظم توی مقالتون وارد کنید. یکی از اشتباهاتی که بچه های ما میکنن اینه که فیشاشون رو میارم، خود فیشهارو میارم میذارن تو مقاله بعد فکر میکنم مقاله نوشتن نه فیش پشت صحنه است شما نباید پشت صحنه کارتون رو بیارید توی مقاله شما باید اون پشت صحنه رو برای خودتون نگه دارید یعنی تو خصوصی خودتون فقط ماحسل کارتون که دست بندی شده اضافات هست شده تکراریا هست شده ترتیب زمانی توش لحاظ شده با این شکل و با این ساختار بیارید مقالتون رو بنویسید خب خلیل میگه که گمراهان حلاک شده ابن درید میگه واژه واژه بور به معنای فاسد است و یه بیت شعرم از عبدالله ابن زبعا ما میاره که من جلوتر برای شما این بیت شعر رو خواهم خون بعدش گفتم آقای راغب اصفهانی هم همین مفهوم رو ذکر میکنه اینجا در واقع میخواستم از تکرار جلوگیری کنم جلوتر دیگه نرم بگم آقای راقب هم همینو گفته. بنابراین آقای راغب ثفهی که لحاظ زمانی بعد از ابن دورایی میشه چون حرف شبیه حرف آقای ابن دورید بوده به نحوی همینجا آوردم اضافه کردم که از تکرار جلوگیری کنم بعد از آقا... خب حالا راغب چی گفته؟ راغب میگه که، بور به معنای کسادی است کساد میگم مثلا بازار فلان کساده مثلا میگم بازار موبایل الان کساده اما کسادی که آقای راغب میگه کسادی که به فساد منتهی به فساد منتهی میشه میبینید چون این واژه رو رقتش میده به معنای فساد پس من آوردم گذاشتم کنار معنای فاسدی که آقای ابن درید گفته دارم اینا رو دسته‌بندی و در واقع با شما پیش میرم معنای سوم آقای ازهری به ما میگه از نگاه ازهری بور مستر است چرا اینو دارم میگم؟ چون آقای خلیل اون بالا اگر نگاه کنید بور رو میگه جمع باعره یعنی جمع اسم فائله این آقای ازهری یه حرف دیگه داره میزنه میگه بور مستر است بعدش گفتم که آقای ازهری علاوه بر تکرار مفاهیم حالک و فاسد و گمراه که اینا رو تو همین دوتا فرهنگ لغت بالا گفته بودن خودش هم یه چیزی اضافه میکنه میگه رجلون ها ایرون با ایرون لا یتجه لایت تجهول شیعن یعنی در واقع شخص گمراه شخص سرگردان انگار داره مفهوم سرگردان رو به ما میده یه معنای بعدی هم همین آقای ازهری به ما میده معنای شماره چهار خالی از هر چیز مثل عبارت اسبحت منازله هم بورا یعنی چه اسبحت منازله هم بورا یعنی خانه هاشون منزل هاشون بور شد یعنی خالی شد خالی از سکنه شد باز معنای پنجم معنای پنجم کی به ما میده بازم اینو آقای ازهری به ما میده یعنی اینایی که داره میگیم آقای ازهری فقط گفته قبل از آقای ازهری کسی نگفته میگه بتلان و بیحاصلی یک چیز مثل اعمال کفار میگه یکی از معانی بور بیحاصل شدن است بتلان شدن است باطل شدن است این معانی رو گوشه ذهنتون نگه دارید جلوتر که بریم اینها اتفاقا کمک میکنن که ما بور رو بفهمیم یعنی چی خب بعد شماره ششم ابن فارس ابن فارس از اون کتاب که من سر کلاس به شما معرفی نکردم کتابش هم متن معجم مقایس اللغه اشکال نداره لزومی نداره شما نگاه کنید این کتاب، رو. اگر نگاه کردید که خب مراد ولی نگاه هم نکردید اشکال نداره آقای ابن فارس معنای زمین خشک و ناکشته رو به ما میده بعد اشاره میکنه به یه نامه‌ای از پیامبر به اوکیدر یه نامه‌ای از پیامبر به اوکیدر حاکم دو متل جندل دومتال جندل یه شهریست یک منطقه است در نزدیکی تبوک یه نامه پیامبر برای این آقای اوکیدر حاکم دومتال جندل می نویسه تو اون نامه یه تکش اینه میگه و لکم البور و المعامی و اقفال العرض میگه شماها زمیناتون زمین های بور شده و معامی شده و اقفال شده معامی و اقفال یعنی زمینهای متروکه زمینای که دیگه کسی سمتشون نمیره. خب آقای ابن فارس به ما گفت بور یعنی چی؟ بور یعنی زمین خشک و ناکشته. بنابراین اینجا تو این نامه که بر به پیامبر اسلام هست میگه بور اینجا یعنی زمین ناکشته، زمین خشک. میبینید که واجه بور اینجا کنار واژه عرض نشسته، یعنی مربوط میشه به زمین. اما شما تو متن قرآن واژه بور در کنار چی نشسته بود کانو قومن بورا قوم یعنی مردم، مردمان گفت شماها مردمانی بور هستید ولی اینجا میگه زمین بور خوب اینا برای ما سؤال ایجاد میکنه که به جوابش خواهیم رسید بعد از این هم آقای مستفوی رو داریم آقای مستفوی که کتاب از تحقیق و نوشته و معاصر هم هست ایشون هم میگه که باجی بور از ریشه باواورا ساخته شده اساسا به چه معناست به مفهوم ضرر و زیانی آنچنان سخت که نزدیک است به نابودی بیانجامد خدا رحمت کنه، آقای مصطفی رو خیلی جاها حرفاش درسته خیلی جاها هم حرفاش بیشتر حالت فلسفه بافی داره خب این هم نظر آقای مصطفی دید. حالا فقط برای اینکه مطلب تو ذهن شما بهتر جا بیفته یک بار دیگه ببینیم فرنگنامه های عربی به ما چه معانی دادن قبل از اینکه بور رو در زبانهای سامی ببینیم البته قبلش قبلشم بعد من سکوت میکنم که اگه شما سحالی دارید جواب بدم آقای خلیل ابن احمد فراهیلی به ما میگه بور جمع باعر است به معنای گمراهان هلاک شده زالون هلکا ترجمهش میشه گمراهان هلاک شده آقای ابن دورید بور را به معنای فاسد میگیره یه شعر از عبدالله ابن زبرا به ما میده که من در ادامه خواهم کنم آقای راغب میگه بور یعنی کسادی منطقه کسادی که داره میره که دیگه به فساد و نابودی منتهی بشه از هری میگه چی؟ از هری که بور به معنای بور مستر است چندتا تا معنام براش سکر میکنه یکیش گمرا و سرگردانه که شبیه معانی قبلیه یکی از معانی یعنی معنای شماره چهار خالی از سکنه شدن معنای پنجم یعنی بیحاصلی و بطلان آقای ابن فارس هم بور رو به معنای زمین خشک و ناکشته میگیره آقای مستفوی هم بور رو به معنای ضرر و زیانی سخت که نزدیک است به نابودی بیانجامد اینا معانی است که حالا شما این چیزی که دارید میبینید اگر من بخوام به شما خیلی سمیمانه بگم این از من چند روز وقت گرفته که من ای تمام این فیش ها مرتب کردم منظم کردم برای شما تو یک صفحه یک صحبه و نیم اینقدر مرتب و منظم معانی رو گفتم فکر نکنید که خیلی کار ساده باید فیشاتون رو اولا درست و دقیق بردارید دوم اینکه درست و دقیق ترجمه کنید و سوم اینکه اینها رو به درستی بندی کنید یعنی یه هنرم از شما میطلبه که این فیشاتون رو درست بندی کنید و البته درست هم باید بفهمید خب بعد از این وارد تیتری میشیم با عنوان بور در زبانهای های سامی که تیتر سوم میشه اینجا من سکوت میکنم اگر سوالی دارید ای کاش میکروفونتون رو روشن میکردید نمیدونم چرا اینقدر علاقه دارید تایپ بکنید من در خدمتم استاد ببخشید این دسترندی که توی فرهنگنامه های عربی هفت هفتا مثلا شما ذکر کردید بعد اون چهار و پنج و زیل نظر خود از هری جدا کردید من میخواستم بدونم آیا ما هم توی مقالمون تمام نظرات رو جدا کنیم یا مثلا اگه تو نگاه ازهری همه معناه هایی که هست تو اون دسته اووردیم مشکلی ایجاد میکنه از نظر ظاهر مقاله چون من خودم این کاری کردم مثلا معانی که ازهری گفته رو همه رو توی دسته خود در دست ازهری اووردم یا مثلا مثال میزنم البته ازهری رو آیا اینو باید جدا کنیم اینو به زحمت توضیح بدیم؟ خب ببین خانم شما به آب... معیارتون باز تکرار میکنم اقوال هستش آرا هستش نه افراد یعنی شما کاری به آقای ازهری ندارید کاری به خلیل ندارید کاری به افراد ندارید کار به نظر افراد دارید اما چرا ما میگیم از چنین گفته است ما بالاخره باید بگیم به عنوان یک محقق این حرف از کجا داریم نقد میکنیم اسبردن از ازهری فقط از این جهته که ما میخواییم بگیم آقا کتاب تحصیب و لغه ازهری رو هم دیدیم توی تحقیقمون ازش استفاده کردیم و او اینو میگه اما میار دستبندی ما آقای ازهری و آقای خلیل و آقای ابن منظور نیست میار دستبندی خود معانی هستن یعنی شما وقتی میخواید دستبندی بکنید تا کار نداشته باشید خلیل گفته کی گفته معانیتون رو یک جا روی کاغذ جلو خودتون بنویسید بعد که معانی رو نوشتید ببینید حالا این معانی رو میشه دست بندی کرد یعنی مثلا فرض کنید سه نفر سه لغوی گفتن یکی از معانی بور هلاک شده است خب این پس میشه یک دسته معنا اینو میذاری بالا دسته دوم گفتن به معنای فاسده میشه دسته دوم حالا دسته هاتون که تموم شد بعد ارجا بدید بگید خب چی گفته که بور به معنای فاسده وقتی میخواد این ها رو معانی رو در واقع ارجاشون رو بگید اونجا ترتیب تاریخی رو حفظ کنید اگر خلیل اولین نفره اول خلیل رو بگید اگر ازهری نفره اوله اول ازهری رو بگید و به همین ترتیب, ترتیب در واقع ترتیب زمانی لغوی ها رو حفظ بکنید اینکه مثلا شما بخواید بگید آقای ازهری معانی که گفته این تاست. خب اگر رفتید فرهنگ آقای ابن منظور که بعد از ازهری هست دیدید دیدید اونم همین چارتار رو گفته دوتا معنا رو اضافه کرده خب چرا باید اون چارتار رو دوباره تکرار کنید برای ما شما میتونید همونجا که دارید از رو میگید در واقع پرانتز که باز میکنید بعد از اسم ازهری اسم اسم اسم ابن منظور هم بنویسید ما میفهمیم که شما ابن منظور هم دیدید و اونم همین معنا رو تو کتاب لغتش ذکر کرده اینجوری از تکرار جلوگیری جلو اگر نه مجبورید مثلا معنای هلاک شده رو ده دفع تکرار کنید چون ده تا فرنگ لغت همین رو تکرار کردن پس معیارتون اسم نویسنده ها نباشه معیارتون معانی باشه درست شد خانم؟ بله بله من خواهش میکنم خب آقای امیرحسین فلاح پور بفرمایید خب آقای فلاحپور من حالا یه خود توازو کردم برای مقاله خودم من هم ریشه رو کار کردم یعنی حالا بریم جلوتر مقاله رو خودتون متوجه میشید من کل کاربردهای های قرآنی ریشه با و رو همه رو تکلیف معناشو روشن کردم توی مقاله مثلا بوار واژه بوار هم توی قرآن داریم تبور اینم تو قرآن داریم من تکلیف اینا رو معلوم کردم یعنی منم ریشه رو کار کردم منتا خواستم بگم که مقاله من تأکیدش روی بوره اما حالا فرض کنیم مثلا شما ریشه رو هم میخواید کار بکنید چه ببینید امروز اتفاقا داشتم یک مقاله مفردات رو کار میکردم ببینید وقتی شما وارد فرنگ نامه میشید چیزی که من امروز دقیقا باش درگیر شدم و به شما میگم خیلی وقتا هست برای ریشه شما پرنگنامه های عربی مثلا فرض کنید ممکنه هشتا معنا رو برای ریشه گفته باشن. بعد شما متوجه هستید که این هشتا عملا به کار شما نمیاد یا بعضی از این صورت مشتق شده از اون ریشه به کار شما ربطی نداره. باژه که من امروز کار میکردم زرعه بود با دالزال. یکی از معانی که برای زرعه گفتم پراکندن بود من میدونستم این معنا به کار من میاد چون تقریبا فهمیده بودم این واژه قرآنی چی میخواد بگه اما یکی دیگه از معانی که برای ریشه گفته شده بود گفته بودن سفیدی مثل سفیدی نمک و من کاربردهای های قرآنی این واژه را جلوی چشمم داشتم میدونستم این کلمه هیچ جا در قرآن اصلا به معنای سفیدی مثل سفیدی نمک به کار نرفته. بنابراین من دیگه به اینها نپرداختم فقط توی مقالم نوشتم که این ریشه معانی دیگری نیز دارد که با توجه به آن که در مقاله حاضر تأکید روی یک واجه قرآنیست و ربط وسیقی به کار ما ندارد از ذکر آنها خودداری می شود این دیگه یه مقدار تبهر شماست اگر احساس می کنید یه مشتقی از اون ریشه یا یک سری معانی از اون ریشه به کار شما واقعا ربطی نداره اونا رو اصلا توی فیشاتون بردارید ولی وقتی که خواستید مقاله رو بنویسید ازشون استفاده نکنید فقط یه اشاره کنید. اما یه نکته رو بگم آقای فلااپور و بقیه دوستان خیلی دقت کنید خیلی دقت کنید گاهی شما فکر می کنید نداره. وقتی که مقالتتون رو دقیقتر و دقیقتر و دقیقتر کار میکنید متوجه میشید که نه اشتباه کردید ربط داشت من همین الان برای شما مقاله بور رو. اگر دوستانی که خوندن فهمیدن که پایان این فیلم چه خواهد شد ولی اونایی که نخوندن بهتر میتونن تصدیق کنن حرف من رو معنای بور به معنای زمین بایر زمین خشک و بور به معنای آدم فاسد و خراب اینا چه رفتی به هم داره؟ الان بریم جلوتر یکی از معانی که برای بور در زبانهای سامی گفتم مفهوم نادان و احمده، مفهوم آدم نادان حالا من از شما سؤال میکنم من دارم فیشام بر میدارم بور رو نوشته به معنای زمین خشک بعد یکی دیگه از این فرنگناما گفته که بور به معنای نادان مثال میگم گفته به معنای نادان بعد من با خودم میگم خب نادان کجا بور کجاست این رفتی به همدیگه نداره. بنابراین من اونجا سرم کلا میره فیشو بر نمیدارم یا فیشو و بر میدارم ازش استفاده نمی کنم. خیلی کار دقیقه باید حواستون باشه در خدمتم اگر سوالی هست در خدمتم آش میکنم آقای پور واژه ما فقط دو معنا دارد در نمیدونم چیچی چی فرنگنامه های عربی ولی ریشش زیاد به کار رفته این رو چیکتار کنیم اینو هکتار بکنیم نمیدونم شی نوشتید نوشتید چه کار بکنیم گفتید. خب والا دارم شوقی میکنم میگم تایپ نکنید ولی تایت میکنید ببین آقای شجاپور باز هم تکرار میکنم واجه های شما پیوند تنگاتنگی با ریشه واژه شما داره. اغلب این طوریه یعنی اغلب در زبان عربین اتفاق میافته که ریشه واژه با واژه مرتبط به لحاظ معنایی. گاهی هم این ارتباط وجود نداره گاهی این ارتباط بین ریشه و واژه قطع میشه وجود نداره. من دونه دونه نمیتونم برای شما قعدده. صادر کنم بگم که مثلا چکا بکنید یه قاعده بگم همه شما همون مسیر رو برید این بسته به خود شما داره مثلا من الان برای شما مثال میزنم واژه محراب رو که با هم کار کردیم، مگر از ایشه حرب نیست حرب به معنای جنگیدنه اما محراب به معنای محل عبادت رفتش به هر چیه؟ هیچ ربتی وجود نداره فرانینامه های ما اتفاقا از غلط به اشتباه افتادن دنبال این که بگن آقا محراب محل حرب با شیطان و هوای نفس است در صورتی که هیچ دلیل لغوی برای این وجود نداره این فقط تقدیسی زوقی و سلیقگی است که لغوی های ما گفتن بنابراین بین محراب و حرب ارتباطی وجود نداره اینکه من از کجا تشخیص دادم من نشستم مقاله محراب رو کار کردم انتهای کارم متوجه شدم من الان نمیتونم بر واژه شما بگم که دو اون دوباری که شما واجتون تو قرآن به کار رفته اینا با ریشه ربط داره یا نداره عموما به شما میگم عموما ربط وجود دارد اما گاهی هم پیش میاد که ربطی وجود نداره کار مطمئنتر این آقای شجاپور که بیایید ریشه رو هم با دقت ببینید منتها سعی کنید از اون مشتقات و اون معانی که احساس میکنید به کار شما به اون دو واجی شما ربط نداره یا ربط خیلی چمی داره اونا رو سرف نظر کنید که وقت شما کمتر گرفته بشه در خدمتم اگر سوالی هست خب خواهش میکنم بریم پس ظاهرا سوالی ندارید بریم سراغ ادامه مقاله که من اینو امروز به یه جا خوب برسونم خوب. تیتر بعدی بور در زبانهای سامی بور در زبان‌های سامی خب اینجا هم برای شما چند تا فرنگ لغت معرفی کردم فرنگ لغت اولی که معرفی کردم آقای مشکور بود بعد جفری و بعد هم آقای زامیت بود سه تا فرنگ لغت به شما معرفی کردم مفصلن کاری که شما باید بکنید همین سه تا فرنگ لغت رو ببینید حالا بیام پایین تو توی من منابع دیگری هم دیدم اونها برای شما نیازی نیست. شما همین سه منبع رو با دقت ببینید کفایت میکنید نگاه کنید بعد از بور در زبانهای سامی م... نوشته شده تیتر فرعی یک سه همیشه این طوریه دیگه شما یه تیتر اصلی دارید اگر لازم شد زیر اون تیتر اصلیتون چند تا تیست فرعی داشته باشید خب باید شروع کنید تیتر فرعی دادم چیزی که اینه که شما خیلی به این تیتر فرعی اینجا نیاز پیدا نمیکنید چرا؟ چون من گفتم نگاه نخست. شما نگاه نخستتون همون نگاه پایانی هم هست. یعنی دیگه وارد متون سریانی و عبری و آرامی نمیشید و از شما این توفقه نیست. بنابراین بوردر زبانهای سامی که تیتر سه شما میشه، دیگه تیتر فری یک نمیخواد دیگه شما اون تیتر یک را فکر کنید حس شده است و شروع میکنید همونجا یه گزارش میدید که واژه شما در زبانهای سامی به چه معنایی به کار رفته وقتی نگاه میکنید واژه بور به معانی اضافه بر اون معنای هلاک شده و خراب و زمین بایر که توی فرنگ نامه های عربی بود چون زبان عربی هم از زبانهای سامی بنابراین بعد یه سری معانی نزدیک داشته باشند یه معنای دیگه هم معنای نادان و بی فرهنگ هستش که من شماره هشت رو بشت دادم چرا شماره 8 رو دادم چون ادامه شماره هفت دیگه یعنی اینجا هشتمین معنا برای این واژه در زبان‌های که این معنا در واقع در زبان‌های سامی خب یه خود اینجا دقیق بشین. معانی که زبان های سامی یعنی آقای جفری مشکور و زامیت این ستا مجموعا برای ما ذکر میکنند چیه؟ یکیش میگن همون معنای زمین بایر زمین ناکشته یا معنای نابود و یه معنایی به ما میدن نادان و بیفرهنگ یه خورده این معنا برای ما عجیبه یعنی انگار که این معنا رو ندیدیم این معنا انگار شازده، این وسط چیکار میکنه زمین بایر، خراب، ناکشته، اینا چه ربطی داره به نادان و بیفرهنگ؟ خب، بعد من این معانی رو که میگم، اگر آقای جفری، آقای مشکور یا آقای زامیت توضیحی داده باشن، اون توضیح رو هم اضافه میکنم، آقای جفری توضیح داده که در واقع لغوی های مفص... لغویان و مفسران مسلمان با این واجه دچار مشکل شدند. یه سری توجیهات ارائه کردن این توجیهات خیلی قابل قبول نیست یک گزارشی از صحبت آقای جفری او اینجا شما بحثتون تموم میشه یعنی زبانهای سامیرتون رو هم دیدید و کار برای فرنگنامه ها تمام میشه اما م... از اینجا به بعدش یعنی تا جایی که میگم از اینجا به بعد یعنی از تیتر فرعی بررسی دوباره تا جایی که میگم توی مقاله شما لازم نیست بیاد رسیدیم به جایی که لازمه بیاد به شما اشاره خواهم کرد مجدد اما چون میخوام مقاله خود مقاله بور برای شما جا بیفته باید با همدیگه این تیتر فرعی دو سه رو هم با عنوان بررسی دوباره پیش بریم من از این تیت تی یک بخشای رو گلچینگ کردم فقط برای این که برای شما بخونم ببینید چی شد تا اینجا های عربی معنای فاسد، خراب، هلاک شده، زمین بایر و ناکشته و مفاهیمی از این دست گفتن تو زبان‌های سامی هم همین معانی تقریبا اومده یه معنای نادان و بی فرهنگ هم اضافه شده حالا من میخوام یه خورده دقیق تر بشم برم و در واقع توی متون متون مقدس یهودی مسیحی این متون مقدس یهودی مسیحی که اینجا ذکر میکنم به سه زبان در واقع استفاده شده سه زبان سامی یکی زبان ابریست که زبان ابری میدونید زبان عهد عتیق یا اصطلاح خودشون میگن تنخ تنخ یه زبان سوریانی و آرامی هم داریم که اون هم زبان سوریانی بیشتر مربوط میشه به مسیحیا برای عهد جدید و زبان آرامی هم که هم یهودی هم مسیحی استفاده میکنن حالا بیشتر میتونیم بگیم به مسیحیا راه پیدا میکنن بنابراین ما الان میخواییم چندتا تا ببینیم به زبانهای سامی که همین واژه بور درشون به کار رفته اگر قرآن متن مقدس مسلمون هاست عهد قدیم و عهد جدید اینا میشن متون مقدس یهودی ها و مسیحیا. ها من چند تا کلمه رو همین الان به شما بگم عهد قدیم یا عهد عتیق هم بهش میگن این میشه برای یهودی ها عهد جدید این میشه برای مسیحی ها اگر ما عهد قدیم و عهد جدید رو کنار هم در واقع بگذاریم و یک ما بین و دفت بکنیم بین دو تا جلد بزاریم، بهش میگن بایبل کتاب شنیدید کتاب مقدس میگن ریسا میبرم بایبل دیگه بایبل متشکل از عهد قدیم و عهد جدید درست شد باز بذارید به شما یه نکته دیگه بگم موقع شما ممکنه بگید اشدار اول خب انجیلم که میگن میگن اناجیل اربع اون 4 فصل اول اناجیل همش شد بایبل بایبل دو بخش از قدیم عهد جدید عهد قدیم پنجتای تای اول میشه تورات انجیل انجیلم اناجیل اربعه میگن انجیل حالا پس گفتم رسیدم به تلمود تلمود چیه؟ تلمود کلمه تلمیز تلمیز عربی تلمود اینا از یه ریشه هستن تلمود یعنی در واقع اون ای که مربوط به یهودی هاست اولا و یک نوع شرح و تفسیری است بر عهد قدیم خب یعنی که یه ای ارباقه یک نوع تفسیر و شرحی است بر عهد عتیق تلمود درمون تلمود صحبت میکنم مثل روایات ما چطور؟ روایات ما رو دیدید روایات ما ناظر به قرآن هستن تلمود هم ناظر به کتاب مقدس یهوری هاست. تلمود سرشار از مباحث فقهی است مثل روایات ما که پر از مباحث فقهی است خوب این هم از تلمود حالا در همین اندازه بدونید کافی. یک کلمه دیگه هم هست ترگوم ترگوم ترگوم همون ترجمه که میگید ترجمه کلمه ترجمه از ترگوم گرفته شده ترگوم چیه؟ ترجمه آرامی کتاب مقدس رو بهش میگن ترگوم ترجمه به زبان آرامی اینا رو توی مقاله اسماشون رو میبینید ترگوم تلمود بنابراین مقاله اگه با دقت بخونید متوجه میشید خب حالا بریم سراغ این متون مقدس ببینیم چه معانی برای این ذکر کردن سی ثانیه من صحب میکنم سی ثانیه صحب کنید الان برمیگردم خب بریم سراغ این موتون من یه چیزی رو همین ابتدا بگم برای این موتون وقتی شما این متون رو باز میکنید ببینید با دقت به من گوش بکنید باجی بور یا ریشی با واب را در این متونی که خدمتون میگم در قرآن در اشعار جاهلی و مخضرنین و در متون مقدس یهودی مسیحی وقتی میگم قرآن قرآن که براتون روشنه میدونید منظور از قرآن چیه که اونی که بحثی نداره اشعار جاهلی یعنی اشعاری که مربوط میشن به دوره قبل از اسلام اثر جاهلی مخذرمین یعنی کی؟ یعنی کسایی که هم دوره جاهلی رو دیدن هم اسلام رو درک کردند. اینا رو میگیم مخذرم توی مقاله هست کلمات جاهلیها ها هستن که فقط دوره جاهلیت رو پیش از اسلام رو درک کردن اسلام رو درک نکردن بنابراین در قرآن اشعار جاهلی، اشعار مخزرمین که حالا ما این اشعار جاهلی و مخزرمین رو کلن بهش میگیم اشعار کوهن عربی شما هم توی مقالتون فقط با شعرای این دو دوره کار دارید دقت بکنید فقط با شعرای این دو دوره کار دارید پس شد قرآن اشعار کهن عربی متون مقدس یهودی مسیحی متون مقدس یهودی مسیح چیا هستند همینی که خدمتون گفتم عهد عتیق عهد جدید تلمود ترگوم درست شد وقتی شما میرید این واژه رو دنبال میکنید توی این متون متوجه میشید که دو معنا برای این واژه وجود داره معنای اول زمین بایر یا ناکشته هستش معنای دوم آدم نادان و بی فرهنگ یا آدمی که تربیت نشده، آدم بیتربیت. دو معنا در واقع این دو معنا یعنی معنای زمین بایر و ناکشته و معنای نادان، بی فرهنگ یا بیتربیت، این دو معنا توی تمام این متون وجود داره یعنی هم در قرآن هم در اشعار جاهلی و مخذرنین و هم در متون مقدس یهودی مسیحی این دو معنا به موازات هم وجود داره فقط بحث اینه که ربط این دو معنا با هم چیه که ما در صحبت خواهیم کرد حالا با من همراه بشید یه خورده از این متون رو با هم بخونیم اگر نگاه کنید اونجایی که میگه در تلمود اورشلیمی این عبارت آمده است بدین منظور که سرزمین فلسطین بایر نباشد نمیدونم میتونید ببینید همراه من هستید یا نه ببینید این عبارت رو من از اینجا چندتا از تو این بخش چند تا عبارت رو فقط جدا کردم که با همدیگه دیگه متوجه بشیم نهایتن این مقاله چی میخواد بگه یه عبارتی هست در تلمود اورشلیمی عرض کردم دیگه تلمود هم چی هست به زبان عبری بدین منظور که سرزمین فلسطین بایر نباشد اینجا باجی بور به کار رفته این واژه بور در کنار زمین نشسته سرزمین فلسطین خب پس میبینیم اینجا که بایر در معنای همون زمین بکار رفته معنای ملموس خودش یعنی زمین بایر همتون زمین بایر دیدید دیگه زمین های خشک و خالی و بیحاصلی که هیچ محصولی نیست فقط میرید حالت بیابونه هیچی توش نیست خب بعد جلوتر که میبینیم نوشید در ترگوم جاناتان در ترگوم جاناتان این عبارت آمده است زمین یکسره از خار و خس پوشیده خواهد شد این خار و خس دقیقا معادل همون زمین بایره یعنی مترجم ترجمه کرده به خار و خس منظورش همون زمین بایره که تو زمین بایر چیزی جز خار و خس نیست میبینید اینجا هم باز واژه بایر یا خاروخست در کنار واژه زمین نشسته این به ما داره میگه که ما با معنای ملموس کار داریم یعنی معنای ملموس که میگم یعنی همون چیزی که شما با چشم سر میبینید زمین بایر رو میتونید ببینید میتونید دارید دست بزنید بهش زمین بیحاصل زمین بیفایده خشک و خالی خب بعد از این نوشته اکنون به مفاهیم استعاری واژه پردازیم حالا میخوام مفاهیم استعاری واژه رو ببینیم چیه چرا این اسمشو میذاریم مفاهیم استعاری مفاهیم قبلی مفاهیم ملموس هستن یعنی با یکی از حواس قابل درکن. شما میتونید با چشم سرتون ببینید یا برید دست بزنید حس لامسه یا حس بویایی اینا رو میگم ملموس زمین باگر و ناکشته هم ملموسه اما مفاهیم استعاری چیه تو این متون یهودی گفته اکنون به مفاهیم استعاری واجه در متون مقدس یهودی میپردازیم چیا هستند بی فرهنگ بی تربیت، نادان نااهل و وحشی ناآموخته این تیکه رو دارم میخونم خب حالا میام پایین تر میرسم به در کتاب میشنا بذارید منم مقاله رو جابجا کنم که شما ببینید در کتاب میشنا میشنا چیه؟ میشنا یه بخشی از تلموده تلمید... تلمود دو بخشه میشنا و گمارا یه بخشی از تلموت اسمش از میشنا این اسما رو میبینید نه ترسید. اینا ترسناک نیست خوب چی میگه در کتاب میشنا مش... در کتاب میشنا بخش پیرکی ابوت ابوت همون عباست تو یعنی بابا این به اوه تبدیل میشن ابوت این عبارت آمده است. چی اومده؟ میگه فرد بیتربیت یا فرد نادان از گناه نمیه ابریشو نگاه کنید. ابریشو هستید همراه من؟ مقاله رو میتونید دنبال کنید. بله متوجه شدم میگه که این عبارت میگه فرد بیتربیت یا فرد نادان از گناه نمی حراسد. از گناه نمی ترسد. این مت... ترجمه ای عبارت عبریه این بورگیره آخ... خطه این خطهی که آخرش بوده همون خطاست خطا دیدید توی قرآن هم خطیع داریم خطیه این خطا اما خطیئه است یعنی خطا گناه ان بور یره خطا یعنی فرد بور یره یره یعنی ترسیدن اون عین که اولش اومده ببین ابری از راست به چپ مثل فارسی و عربی نوشته میشه ان بور یره خطا یعنی این یعنی نه نه بور میترسد خطا را یعنی بور از خطا نمیترسد فرد بیتربیت، نادان از گناه نمی خوب، خب، حالا اینجا صحبت اینه که این واجه بور اینجا حتما دیگه معنای ملموس نداره. چرا؟ چون معنای ملموسش برای زمین کشاورزی به کار رفته. اما اینجا داره برای چی به کار میده؟ برای یه بیتربیت، یک نادان، برای زمین کشاورزی برای زمین به کار نرفته میگه بیتربیت از گناه نمیهراسد شما مگه بیتربیتی و نادانی رو میتونید ببینید بیتربیتی و نادانی بیفرهنگی دیدنی نیست نشون دادنی نیست بله یه نفر یه اعمال و رفتاری میکنه از اون اعمال رفتار رو شما مسامحتا بهش میگید بیفرهنگی ولی بیفرهنگی شبیه یه آدم میزاد نیست که بیاد وایس یه گوشهای یا بشینه روی صندلی بعد شما اشاره کنید بگید این بیفرهنگی یعنی این بیتربیتی یعنی این یعنی بیتربیتی و نادانی و بیفرهنگی مفاهیمی هستند که ملموس نیستن وقتی میخوام ملموس بشم باید بشینن تو وجود یه آدمی شبیه رنگ رنگ تا دیوار نباشه تا یه چوب نباشه تا یه سقفی نباشه رنگ خودشون نشون نمیتونه بده باید یه لباسی باشه تا یه رنگی. رنگ معنا پیدا کنه باید یه دیواری باشه تا بتونید دیگه این دیوار آبیه یا سفیده در واقع اینا رو بهشون میگن مفاهیم استعاری مفاهیمی که ناملموس هم خب پس ما اینجا داریم با معنای استعاری این واژه در متون یهودی آشنا میشین میانی پایین در تلمود بابلی 13CB شبوعت اینجا رو میخوام بخونم. در تلمود بابلی چی اومده میگه که تو ترجمه عبارت عبری رو دارم می‌خونم. میگه اگر شاگرده ناآموخته یک قاضی در جریان محاکمه دخالت کند ممکن است قاضی در قضاوتش دچار اشتباه شود این عبارتی که توی پرانتز جلوی شاگرد ناآموخته نوشته شده این عبارت هستش تلمید بور تلمید بور تلمید همو تلمیزه یعنی شاگرد شاگرد بور شاگرد بور یعنی شاگردی که ناآموخته یه نفر مثلا تازه دم مدرک وکالت گرفته حقوق خونده هنوز کار بلد نیست اینو ببرش بگی حالا بیا قضاوت کن خب میزنه همه رو نابود میکنه دیگه این شاگرد ناآموخته توی عبارت عبری با کلمه تلمید بور بیان شده اینجا بور به چی اشاره داره میگه یه دانشجویی، یه دانش آموز رشته حقوق یه شاگرد درشته قضاوت که قضاوت بلد نیست اگر بره تو جریان محاکمه دخالت کنه قاضی رو هم به خطا میندازه کار قا... یعنی قضاوت قاضی رو هم دچار اشتباه میکنه. میبینید اینجا بور داره به چی اشاره میکنه انگار یه چیز آموخت نیست باید برید یادش بگیرید. یعنی یه چیز اکتسابی است <تص> شما مثلا اگر ده سال قضاوت کنید خب سال یازدهم قضاوت شما بهتر میشه ولی سال اول قضاوتتون خلاصه زندان رو هم تو پر میکنید این یکی رو اعدامش میکنید اون یکی رو نمیدونم به جای دو سال پنج سال حبس براش میبندید یعنی چی؟ یعنی که ناموقده است یعنی قضاوت بلد نیست این کارش قضاوت نیست پس بور به معنای ناامختست اینجا دقیقه میان پایین تر اون عبارت ابری که میگه واژه آرامی بورا در ترگوم امثال فصل سی آیه دو سه تعدیب میکنید دیگه یعنی بهش ادب یاد میدید توبیخش میکنید من مکفن دانشوی خودمو توبیخ میکنم تعدیبش میکنم در اینکه میخوام با فرهنگ بشه میگه اما اونی که از توبیخ از چوب معلم فرار میکنه بعدا وحشی میشه میدونید این عبارات رو برای چی دارم بروش تأکید میکنم شما متوجه هستی تو تمام این عبارات واجه بور یه چیز است. یعنی میگه اگر بری یه چیزی رو یاد بگیری. اگر بری قضاوت رو یاد بگیری. اگر بری تعدیب بشی. اگر تو رو توبیخت بکنن. اگر به تو یاد بدن تو بور نمیشی. یعنی تو وحشی نمیشی. تو, تو بی فرهنگ نمیشی. تو نادان نمیشی. این عبارات رو دارم میخونم که به این معناش دقت کنید به این وچه از معناش دقت کنید خب حالا چند سطری بیاید پایین تا اونجایی که نوشته اکنون به کاربردهای های واجه در متون مقدس یهو مسیحی می پردازیم اکنون به کاربورت های واجه در متون مقدس مسیحی می پردازیم خب من من یه چند ثانیه سکوت میکنم شما ببینید رسیدیم به اینجا اکنون به کاربردهای واژه در متون مقدس مسیحی میپردازیم فقط خیلی سریع در حد دو جمله بگم واژه بور در متون یهودی هم به کار رفته در این متون دو معنا داره یه معنای ملموس داره یعنی زمین بایر یا ناکشته و یک معنای استعاری داره یعنی فرد بی فرهنگ، بی وحشی و ناآموخته مفاهمی از این دست پس ما در متون یهودی با دو دست مفاهیم مواجهیم تا همینجا اگر سؤالی دارید من در خدمتم اه خسته شدید هستید خب مطلب تا اینجا براتون جا افتاده تا اینجا اینجای مقاله هم به لحاظ شکلی یعنی شکل یک مقاله رو که میخواید بنویسید دارم سوال میکنم هم به لحاظ محتوی مقاله یعنی هر دو مد نظرم هست خیلی خوب خیلی خوب ایچ من الان من فکر می‌کردم ساعت پنج رو به مثلا الان نگاه کردم الان دیدم بیست دقیقه به شیشه خوب حالا چون یه خورده دیرتر شروع کردیم جلسه مجازی هم نمی‌دونم چه راق برکتش کمه یعنی زود تمام میشه اه اه اه چاره چاره‌ای نیست حالا یه مقدارش هم به خاطر این عدم اطمینان به سیستم ما چیش‌پش میکنیم سرعت منم میاد پایین اگر اجازه بدید چند دقیقه دیگه در مورد این مقاله صحبت کنم لاقل تو این بخش مسیحی هم تموم کنیم بخش مسیحی بقیه شو بذاریم برای جلسه بعد خب بریم این بخش مسیحی رو هم با هم بخونیم رسیدیم به اینجا اکنون به معانی واجبه در متون به کاربورد های واجبه در متون مقدس مسیحی میپردازیم من اینو سری بگم که یه چند بگم برای وقت برای پرسش ها شما باشه بیاین پایینتر میگه در تفسیر افرایم سوری افرایم سوری یه آرف،, آرف مسیحی بوده یه آرف مسیحی بوده حالا ببینید عبارت سوریانی ترجمه شو میخونم میگه بدین منظور بدین منظور که زمین ها به خاطر فقدان کشاورز بایر نمانند خب این که دقیقا معنای ملموسه چرا از کجا من متوجه شدم معنای ملموسه؟ از کلمه زمین، زمین کشاورزی دیگه داره میگه این زمین، میگه یکی بیاد بالا سر این زمین کشاورزی که این زمین کشاورزی بایر نماند به خاطر نبود کشاورزی. خب این معنای ملموس. ما داریم متون مسیحی به زبان سوریانی رو داریم میخونیم. خب میایم چند صد پوینت‌تر در قرنتیان بخش 11 در قرنتیان فصل 11 در فصل 11 از قول پولس رسول از قول پولس رسول چی میگه اینا که داریم میخونیم اینا مربوط به مسیحیا میشه میگه آقای پولوت رسول میگه شاید سخنوری ماهر نباشم اما در معرفت چیزی کم ندارم این, این اینجا واژه بورا نگاه کنید زیرش توضیح دادم در عبارت فوق واژه بورا این واژه بورا اینجا برای توضیح واژه سخنور به کار رفته میخواد بگه من سخنوری بور هستم یعنی چی سخنوری بور هستم؟ یعنی من در سخنوری نااموختم یعنی, سخ... یعنی من نرفتم کلاس فن سخنرانی رو یاد بگیرم من سخنران نیستم من آدمی نیستم سخنرانی بلد باشم اما آدم بیمعرفتی نیستم یعنی آدم با بامعرفتی هستم اما نمیتونم اینو بیانش بکنم چرا؟ چون آمو آموزش ندیده این آدم برای سخنوری آموزش ندیده میبینید اینجا هم باز سخنوری رو با مهارت مترجمان ترجمه کرده ماهر الان نگران شدم اونم هم اینه که این آقایونی که داریم اسمی بریم مثل افرایم سوری، یعقوب سروجی اینا همهشون قبل از اسلام هستن و ما اصلا با بعد از اسلام کاری نداریم این خیلی نکته مهمیه ما تمام شعرهای عربی یعنی شعر جاهلی، شعر مخضرمین متون مقدس یهودی، مسیح همه اینا که داریم استفاده میکنیم همه قبل از اسلامه چون بعد از اسلام هر جلوتر میام ادبیات معنای کلمات از معنای قرآنی خودشون دور میشه از صدر اسلام دور میشه این خیلی مهمه و پس این آقایون همه یعقوب سروجی عارف مسیحی میشه قبل از اسلام افرایم سوری همینطور خب حالا یعقوب سروجی چی میگه میگه قربانی که آنها به درگاه خدا تقدیم کرده بودند برای تقدیم کنندگان بی حاصل شد باطل شد حواستون هست قربانی که آنها به درگاه خدا تقدیم کرده بودند باطل شد، بیحاصل شد این مفهوم باطل شما رو یاد یکی از اون لغویان عرب میاندازه که میگفت باطل شدن، بطلان، اونم آقای ازهری بود پس یکی دیگه از معانی که داریم برای این واژه میبینیم در متون مسیحی مفهوم باطل و بیحاصله اینا رو هم باز بذارید گوشه ذهنتون. بهشون برمیگردیم میگردیم حتما ببینید چقدر اینا به کار ما خواهند اومد خب من دیگه تا همینجا اکتفا میکنم بریم سر تیتر ادبیات کوهن عرب که این بماند برای جلسه بعد فقط من اینجا یه خلاصه بگم از متون مسیحی در متون مسیحی هم واجه بور به معنای زمین باگر و به معنای فرد بیتربیت فرد ناآموخته و همینطور مفهوم بی حاصل و باطل به کار رفته. اینها رو انشالله براتون جلسه بعد خواهم گفت رفتش به هم چیه همینجا من تا سر ادبیات کوهن عربی اینجا متوقف میکنم بحث رو و ادامهش رو جلسه بعد میذارم. حالا من سؤالات شما رو تا اینجا جواب میدم. فقط در حد پنج دقیقه. ده دقیقه چون کلاس بعدی من شی شروع میشه استاد سوالی که مربوط به تاریخ قرآن آفلاینه مقالات تاریخ قرآن اون رو کجا مرسه کنیم آها داری تاریخ قرآن میپرسید از من خب اشکال نداره ببینید تاریخ قرآن اولی که به من بگید شما فایل صوتی درس تاریخ قرآن رو میگیرید دانلود میکنید راحت مشکلی ندارید؟ من تا حالا مشکلی نداشتم. خب ببینید برای تحقیق درس تاریخ قرآن شما اون چیزی که براتون مشخص شد اون کتاب تاریخ قرآن و اون فصل اون رو می‌خونید، مطالعه می‌کنید، اون خلاصه و اون معرفی که از کتاب مطابق الگوی کتاب ابو عبدالله زنجانی که براتون معرفی شد کار می‌کنید، اونو به ایمیل من می‌فرستید. من مقاله شما رو تحقیق شما رو مطالعه می‌کنم بر اساس اون نمره میدم دیگه اون چاره‌ای نیست اونو نمیشه کاری کرد میشه اینجا یه سوال بپرسم راجع به تاریخ چند دقیقه صبر بکنید بذارید من جواب سوالات دوستان رو در حوضه نکات بدم بعد در خدمت شما باشم چون می‌ترسم وقت کم بیاد آقا تایپ می‌کنید کار خراب میشه من نمیتونم بخونم حقیقتش چون میگم فونتا میرزه بهم اگر خانم خلوصی بتونن کمک من کنن که میکروفون دارن سر یا میتواند اضافه کنم مثل روایات آها آقای آقای شجاپور این همه ما داستان گفتیم شما حالا تازه ما رو داره میکنید گوش بکنید همه دوستان گوش بکنید این اشتباه فاحشی که همه میکنن تو نوشتن مقالات مفردات چه خوب که آقای شجا... شجاپور... شجای پور این سآل رو پرسید سآلش البته سآل خیلی خوبیه ببینید اه... گوش میکنید به من بذارید من جواب آقای شجاپور رو بدم چون سال همه شماست بعد تایپ کنید اینجوری تمرکز من هم حفظ میشه داستان روایات با آیات قرآن به لحاظ زبانی فرق میکنه این اشتباه رو نکنید ببینید آقا معنای های قر، ها در قرآن با معنای واجه ها در روایات خیلی وقتا فرق میکنه یعنی شما اگر یه مقدار کار کرده باشید اینو متوجه میشید بنابراین فکر نکنید که اگر روایات رو ببینید دارید معنای قرآنی رو بهش نزدیک میشید روایات مفصل قرآن هستند درسته ولی به زبانی مال یک دوره نیستند اینا با هم خیلی فرق میکنه و ببینید امام صادق میشه کی وفاتش تقریبا میشه 100 خورده ای مثلا اواسط قرن صده دوم شد؟ امام صادق وقتی داره حرف میزنه 150 سال تقریبا 140 سال از وفات بر گذشته شما الان شما نسبت به جد خودتون که 140 سال گذشته ادبیاتتون که شبیه اون نیست دیگه یعنی هرچی زمان میگذره ادبیات فرق میکنه درست شد مثلا میگم یه مثال ساده به شما میگم فرض کنید الان قدیمی ها رو وقتی ازشون سوال میکنید میگه من دوره چارم متوسطه که بودم فلان امروزیه که صحبت میکنه میگه من پیش دانشگاهی بودم خواهی این کلمه پیش دانشگاهی از کجا درست شده؟ کلمات درست میشن یعنی زمان که میگذره معنای کلمات عوض میشه کلمات جدید درست میشه بنابراین اینکه شما فکر کنید در کلام امام صادق کلمه محراب اگر به کار رفته شبیه کلمه محراب در قرآن کاملا در اشتباهی. اگر یادتون باشه آقای خلیل ابن احمد فراهیدی مگر مال صده دوم نبود خلیل ابن احمد فراهیدی دقیقا هم دوره امام صادقه یا تقریبا میتونیم بگیم هم دوره امام صادقه برای واژه مهراب چی به ما میگفت آقای خلیل؟ میگفت المهرابو الیومه مقام الامامه فی المسجد یعنی اون جایی که پیش نماز وای میسته تو مسجد امروز یعنی امروز منظور خلیل چی بود از امروز یعنی امروزی که من دارم زندگی میکنم یعنی این سالی که من دارم زندگی میکنم واژه محراب محلی که امام جماعت وای میسته نگفت در قرآن چرا نگفت در قرآن؟ چون خودش حدود 150 سال بعد از نزول قرآن داره زندگی میکنه معنای کلمات در طول زمان عوض میشه بنابراین به هیچ وجه شما در مقالات خودتون برای فهم واژگان قرآنی به روایات استناد زبانی نباید بکنید تفسیر فرق میکنه با زبان کلمات معانیشون تفاوت پیدا میکنه پس این اشتباه رو به هیچ وجه مرتکب نشید. خب در خدمت هم. آره باید با, با فونت عربی بنویسید. ترتیب تیترها یعنی چی آقا؟ متوجه نمیشم. الان ببینید شما وقتی دارید میاید همین ترتیب بور را بکنید. چرا میخواید ترتیب را عوض بکنید؟ اگر دلیلی دارید براش الان به من بگید. اگر دلیلی ندارید با همین ترتیب پیش بیاید. خواهش میکنم خب سوالی اگر هست بپرسید همینطور که خانم دارن تایپ میکنن یه سوال دارم چرا شما میکروفون ندارید خواهش میکنم خب خانم خانم تاریخ قرآن سوالتون چی بود؟ بپرسید از من ظاهرن دوستان سوال مفردات ندارن؟ بله افت تاریخ قرآن موضوع تحقیق من مسایف همزمان ابو شد من سقیق یه سوال داشتم چی آره شد خانم هم... یه بار دیگه بگید؟ موضوع تحقیق من تو تاریخ قرآن قرار شد که مسایف همزمان ابو رو بنویسم بله. بده. بعد این سوالو داشتم که آیا من تمام مصاحف که توی تاریخ رامیار کامل اومده مفصل توضیح داده شده چون قرار خلاصه بکنیم خب من نمیخوام نه یه مصحف و خیلی خلاصه بکنم و مطالب لازم جاب بمونه آیا نمیدونم از یه سری مصاحف بزنم یا اینکه نه مثلا از همه خلاصه بنویسم نظر شما چیه توی مورد چند صفحه خانم کل اون فصلی که م... میخواید خلاصه کنید؟ میتونید مستو 80 یا 90 صفحه باشه؟ ببینید این 80 یا 90 صفحه رو تقریبا باید برسنید به حدود 10-15 صفحه. درست شد؟ بنابراین ده. بر اساس این میار خودتون تنظیم بکنید. اگر اسم بعضی از صحابه رو میبینید که در واقع شناخته شده تر هستن، بعضی از مصاحف مهمتر هستند خب اونا رو یه مقدار بیشتر بهش بها بدید اونایی که کمتر هست کمتر ولی یه چیزی رو به شما بگم کلاً اساساً هدف از این پژوهش تاریخ قرآن این بود که شما یه کتاب تاریخ قرآن از ابتدا تا انتها بخونید من دیدم معمولاً بچه های ما انگار سختشون میاد از ابتدا تا انتهای یه کتاب رو بخونن بنابراین گفتم یه فصل رو به علاقه خودتون متمرکز بشید روی اون کار بکنید اتفاقی که خانم بعد بیفته برای کار شما اصلا مهم تعداد کلمات، تعداد صفحات اینا یه چیزای شکلی که من فقط میخوام معیار دستتون باشه. برای من مهم اینه که خانم این فصل 80 صفحه‌ای رو که میخونه به درستی بفهمه. مباحث اون فصل رو به درستی متوجه بشید، ازش نکته‌های تاریخ قرآنی رو به درستی بگیرید. حالا اگر مثلا خلاصه شما 10 صفحه شد، 15 صفحه مشکلی نداره. 15 صفحه شد، 8 صفحه مشکلی نداره. خیلی روی اینا حساس نباشید مهم نیست خب نه نبا استاد متوجه شدم بله خود حافظ شما خب آقای شجاپور سهارای شما تمومی نداره؟ خلاصی فصل رو هم باید برای شما بفرستیم در تاریخ خور... نه آقا این خلاصی فصل رو برای همسایتون بفرستید باید در کی بفرستید؟ خب باید بر من بفرستید دیگه آقا ببینید کتاب تاریخ قرآن ابو عبدالله زنجانی رو مگه من خلاصی رو به شما ندادم اصلا اون نگاه کردید یک آقای گوش میکنید به من شجایپور؟ یک معرفی از نویسنده باید بیارید و معرفی از کتاب و یک فصل از فصول اون کتاب رو هم مثلا الان خانم میگن 80 صفحه از اون 80 صفحه رو مثلا 10 صفحه خلاصه میکنن 5 صفحه هم معرفی کتاب و نویسنده کتاب مجمعان میشه 15 صفحه صفحه اول تحقیقتون هم اسم خودتون رو می نویسید اسم درستون رو می نویسید, اسم استادتون رو می نویسید. اینو به عنوان شناسنامه میذارید صفحه اول بعد شروع میکنید معرفی کتاب رو نویسنده و بعدش هم اون فصل رو خلاصه میکنید تو حدود مثلا ده سن.